افسونه افسانه دوستان سلام. افسانهها ها قصه های ساده، آمیانه، شیرین و اغلب کوتاهی هستند که سینه به سینه و نسل به نسل به ما رسیدن. افسانه های جای جای دنیا حال و هوا و رنگ و بوی خودشونو دارن و بسته به فرهنگ هر قوم و ملتی شباحت ها و تفاوت هایی با هم دارن. به همین جد ممکنه خیلی وقتا با قصه هایی روبرو بشیم که شبیه اونو قبلا جور دیگه ای خنده باشیم افسانی از هندوستان رو براتون آماده کردیم برگرفته از کتاب قصه های آمیانه آسیا ترجمه مهدی پرتوبی به نام سفر همایونی به بهشت امیدوارم از شنیدن این افسانه لذت ببریم روزگاری دور و نامعلوم پادشاه چاق و ابلهی در گوشه ای از جهان حدبرانه می کرد. پادشاه وزیر لاغر اما بسیار زیرک و به قول امروزی ها مارموزی داشت که از هر فرصتی برای چاپلوسی استفاده می کرد تا پادشاه را بیشتر تو مشت خودش نگه داره و اونو به خودش وابسته تر کنه و اوضاع قصر رو به دلهای خودش پیش ببره اصلا بیایید با هم بریم به قصر تا بیشتر با پادشاه و وزیرش آشنا بشیم همراه من بیای. وزیر امر بفرمایین در خدمت باید به ما قول بدهی که هیچگاه تنهای ما نگذاری هیچگاه و در هیچ شرایطی ام. خوربانتن گردم ام. من کتاب خال بارها و بارها ام. به شما قول هم که هر کس نخواهم گذاشت من تا آخرین نفس را کنار تو قام بود دیگر شما نگرانه چه هستی؟ آری، قول داده ای اما نمیدانیم چرا این نگرانی دست سر همایونی ما بر نمی دارد نیست که این کابوس به سراغ ما نیاید تو خود بهتر میدانی که ما تا چه حد به تو وابستگی داریم حتی فکر اینکه که ای تو در کنار ما نباشی حارام من را برهم هم زند سر و جان هم فدایتان. شما دستور بدهید من چه کنم تا خیالتون راحت تر شود و سر آسوده بر بالی بگذارید خاطر و خاطره ها مایونیتن لحظه ای آشفته نشود ما نمیداریم نمیدانیم خودت با حوش و ذکاوتت چارهی بیدیش ها میخواهید تعهد کتبی بدهم؟ ام. بدفکری هم نیست شاید این گونه خاطر ما آسوده تر گردد. به روی چشم اجازه بدهید هیتم اینالان بنویسم که لحظه ای هم نگران این موضوع نباشید مم. مم. آخ که با از داشتن وزیر لایق آه. و با کفایت وفاداری و وفاداری چون تو خوشدود و خورسندیمه بفرماید قربانو بخوانید حالا بهتر شد خوشحالم که پاسه شاید مانیتان شدم سروره آه حضور وزیر برای پادشاه همیشه باعث دلگن بود و وزیر هم خوشحال از این موضوع هر وقت و هر طور که میتونست از این اعتماد سو استفاده میکرد مثلا تو یکی از روزها که پادشاه کشور قرار بود نه اصلا بهتره برگردیم به قصر تا خودتون ماجرا رو بشنوید بهبه بهبه چه پارچه های زربفت و زیبایی اینها برازنده اندام همایونی ماست آه. دستت تلا وزیر این پارچه های قیمتی را از کجا خریده ای؟ نه خریدم قربانتان گردم دزدیده ای؟ نه این چه به گرفته ای؟ نه قربان جنگی در کار نبوده اینها بخشی از ها یا وطحفه های هستند که آنها را پادشاه چین و ماچین برای شما فرستاده است. دستش درد نکند وزیر جان جان هر مقدار لازم است از خزان بردار و در اولین فرصت برای تشکر از او هدایایی بیشتر و نفیستر برایش بفرست اطاعت می شود قربان وزیر جان به خیاط باشی بگو همین حالا بیاید و اندازه های همایونی ما را بگیرد و با این پارچه ها های فاخر و زیبا و جدید ما را بدوزد. مم. وزیر حقیرتان فکر این لحظه را کرده و از پیش او را برای اطاعت امر شما به اینجا فرا خوانده خیال پاشی مم. پشت در ایستاده و اجازه شرف یوبی آ وزیر وزیر وزیر وزیر تو چقدر باهوش و ذکاوتی خود بده خول بده همیشه و در همه حال کنار ما باشی. من که بارها قول دادم تعهد کتبیان دادم که خاطر همایونی آسوده باشد دیگر شما نگران چه هستی؟ این دلشوره دلشوره دست از سر ما بر نمی آه، آه، بگو خیاط باشی شرف یاب شود نمیدانی چقدر برای پوشیدن لباسهای زربفت و جدیدمان عجله و اشتیاق دارید من دانم قربانتون خیات باشی، خیاط باشی پادشاه عزیزمان ازد ورود دادند می توانی شرفیاب شوی بشو، شرفیاب بشو کردم، بنده برای خدمتگذاری آمادم شما دستور بدهید با هر پارچهی چه لباسی بدوزم تا بعد اندازه های همایونی را بگیرم آه. آه بنده بنده. ای آم ام این نه این ها ای ای آه نه این خب نه این جا به بناد این, بلد. ای بلد. ای بلد. ای این ای را بگذارید. این طرف این را ای این نه خوب نید خب. با, با این پارچه ها که گرم قیمت به نظر می آیند برای من چند دست لباس مهمانی بده با اینها اینها هم یکی دو دست لباس برای تفریح و شکار و گردش و و و و و حرف من تمام نشده با این یکی هم لباسی برای خواب و استراحه نظرت تو چیست وزیر؟ انتخاب ها و سلیقی شما که حرف ندارد سر برم ام. نمونشم همین حقیر که وزیرتان هستم که یار و وفادار شما هستم و همیشه در کنارتون خواهم من خدمت دانه اجازه بخواهم سر برم خب اطاعتم بله خیات باشی با اینکه میدونست انتخاب بعضی از پاچه ها اصلاً مناسب لباسی که پادشاه خواسته نیست اما چون نتونست اظهار نظر کنه اندازه های رو گرفت و رفت که طبق دستورش ها مشغول دوخت و دوست بشه گرون قیمت ترین رو روی میز کارش پهن کرد و قیچی رو گرفت دستش و میخواست پارچه را برش بزنه که یه دفعه خیر یاد باشی جان خیر یاد باشی جان دست گه‌دار چه قزوت دست به کار شدی دیدم سربانم برای پوشیدن لباس‌های جدیدشان اشیاء فراوانی دارند گفتم زودتر خوشحالشان کنم آفرین به تو یادم باشد به پادشاه سفارش کنم انعامی بیشتر به تو بدهد او نه نه لازم نیست من انجام وظیفه میکنم خیلی یاد باشی این پارچه ها را فعلا برای پادشاه بوریش نزد او ات, ات واقعا من هم برای بریدن پارچه ها کمی مردد بودم بعضی از این پارچه ها با توجه بندام همایون پادشاه به درد لباسی که سرورم سفارش دادن نمیخورد مثلا به نظر من این یکی برای لباس خواب است متوجه برای... منظورت هستم اما رای رأی پادشاه هست من تغاظه دیگری هست دارم اوه شما دستور بدهید وزیر محترم آه. من چند روز دیگر باید به مراسم ازدواج برادرم بروم به سفری کوتاه. اوه به سلامتی مبارک باشد م... متوجه شدم باید لباسیم برای شما بدوزم نگرانید که به موقع آماده نشود نه ها نگرانی نیستم به دستی تو اطمینان دارم آه ممنونم ای دارم بسیار شبیه این پارچه چند مترم بیشتر میخواهم با این برای من لباس بدوزی و با آن همه زیاده برای پادشاه آه چرا؟ آه چرا؟ میترسم لباس پادشاه تنگ شود نگران نباش تنگ نمی شود من اندازه های هماینی را بسیار دقیق گرفتم محالت چون اتفاقی بیفتد راستش چطور بگویم می دانیم لب... لباس پادشاه با هر پارچه باشد گران قیمت به نظر می رسد آه. ولی ما که در دربار خدمتگذاری بیش نیستیم هر جا برویم زیر زر بینیم مخصوصا اگر عروسی نزدیکان مان باشد آه. آه. راستش درست ما... متوجه منظورتا نمیشوم ببین خیاط باشی جان جانم. من باید در جشن عروسی برادرم به عنوان وزیر دربار بدرخشم اگر لباسی با این پارچه نفیس و زر بافت داشته باشم برای اعتبار کشورمان بهتر راست یعنی بدون اجازه سربرم اصلا متوجه نمی شود نه نه نه نه من بستر برم خیانت نیست خودم. خیانت بود پارچه پارچه دیگه. دیگر خب اگر پارچه پارچه است از... پارچهت را بده تا با همون برای لباسی فاخر بدوزم من که برای توضیح دادم بله بله اما من چونی کاری نمی کنم پادشاه های ها پیش من امانت است و من خیانت در امانت نمی کنم. تو به حرف من گوش بده خیاط باشی من هوایت را دارم اه اه اصرارت بیفاید است وزیر من تا با چون کاری نکردم و نخواهم کرد حالا بروید و بگذارید به کارم برسم این حرف آخر توست آره حرف اول و آخر باشا به هم میرسیم شرمنده شرمنده وزیر موفق نشد خواستش رو عملی کنه و چند روز بعدم علا رغم مخالفت پاچا برای حضور تو جشن عروسی برادرش راهی سفر شد. پاچا در نبود وزیر بسیار دلتنگ و غمگین بود و فکر و کابوس اینکه وزیرش بالاخره اونو تنها گذاشته و برای همیشه رفته و دیگه بر نمیگرده لحظه رهاش نمی یکی از شبام وقتی با همین کابوس از خواب پرید و دیگه نتونست به خوابه خوابگزار اعظم و احسار کرد و خوابی رو که دیده بود براش تعریف کرد زود باش، زود باش خوابگزار بگو تبیر این کابوس همیشه میشه ما چیز؟ سر چند بار این خواب رو دیده ایده. خیلی زیاد، خیلی زیاد، شاید هر شب شاید هم شبید دو سه بار شاید هم بیشتر اصلا تا سر روی بالش همایونی من میگذاریم و چشم همایونی من را روی هم میگذاریم این کابوس وحشتناک را میبینیم جسالتن سر برم شاید شبها دیر وقت و سنگین شامتان را نوش جان میکنیم ماست چهار است. از قم دوری وزیرمان از خوراک افتاده این خواب گذار بر اساس علم تعبیر خواب هر خوابی که بیش از یک بار دیده شود به طور قطع و یقین تعبیر خواهد شده و, و... شما... و تعبیر این خواب ما چیست اه... بگو بگو راستش تعبیر خواب ها... شما چ... آه... چ... خب چطور بگو دی... بگویم بگو دیگر همینطور که حرف میزنی بگو اه... جانمان را به لب من رساندی بگو بگو اه... ده ده ده ده راستای سر تعبیر خواب شما چندان خوب نیست آه. این خواب ها میخواهد شما را از یک فریبکاری آگاه سازد. فریبکاری؟ چه کسی جرات چنین کاری را پیدا کرده است؟ اگر چیز دیگری هم در تعبیر خواب ما هست، بگو، بگو، بگو تا چاره ای بیاندیشیم خوابگزار. به نظرم باید در نزدیکانتون دنبال شخصی فریبکار بگردید. خیلی خیلی نزدیک. آه. شخصی که به او بیش از همه اطمینند خیلی خیلی نزدیک خب نکند وزیر من باشد این سفرش هم بقان بود برای اینکه با دشمنان ما هم دست شود میستیم میدانستیم او یک روز می رود و دیگر بر نمی گردد. نظر تو چیز خواب گذارم؟ ب... چه بگویم، نظری ندارم قربان، من فقط وظیفه داشتم شما را از تعبیر خوابتان آگاه کنم تا حواستان بیشتر به اطرافیانتان باشد میدانستین، میدانستین، همیشه نگران چنین روزی بودیم، هلا همیشه هلا. برگشتی وزیر؟ بسیار از دیدارتان خورسندم آه وزیر وزی. <تصفح> بله قربانتان گردم برگشتم مگر قرار بود باز نگردم به محض اینکه مراسم تمام شد راهی شدم قدلم برایتان تاین شده بود که طاقت نداشتم صبح شود و برای دست بوسی خدمت برسم وقتی از خدمتکرها شنیدم که بیدار هستید سراسیم خود را رساندم اجازه بده اید دستتون را خواب گذار این چه تعبیر خوابی بود که برای ما کردی سرورم من فقط خوابتان رو تعبیر کردم من من اصلا اسمی از وزیر بردم شما خود به وزیرتان مشکوک شدی سرورم در نبود من مشکلی پیش آمده قاری این خوابگزار بیلیاقت و بیقابلیت باعث شد ما به شما شک کنیم باید مجازات شود تو اگر خوابگزار خوبی بودی خوابه هما یونی ما را خوب تعبیر میکردی وزیر، ترتیب عشد مجازات را برای مردک بده رفت من کابوس های ام. شما را تبیر کردم کاری به وزیر نداشتم وزیر جان، شما چیزی بگو ببریدش، ببریدش گردنش را بزنید از بیخ و بون. پدرش را هم در بیاورید اسلارت بیفایداس مزیر من تا بها چونین كاری نكردم و نخواهم کرد حالا بروید و بگذارید به كارم برسم این حرف آخر توست اری حرف اول و آخرسررم اجازه بدهید اجازه بدهید من مشكل را حل نم نه. علت کابوس های شما نه من هستم نه خوابگزار گذار باشی مقصر است چون برای خواب شما لباس راحت و مناسبی ندوخته اوست که باید مجازات شود مم. مم. انگار حق با توست این چندشب که لباس خواب جدید من را پوشیدیم کابوس های من هم بیشتر شده بود مم. آه. خیاط باشی را ادام کنید بلکه ما یک خواب راحت داشته باشیم ادام؟ آری ادام در تعبیر خواب دقت بیشتری کن خواب گذار و تا عمر و ثروت داری محبت مرا جپران کن بله اوضاع فرمانروایی و قصر و پادشاه و وزیر به همین منوال میگذشت و هرکس با وزیر ناسازگاری می کرد به طریقی نابود میشد جا یکی از روزهای اواخر پاییز پادشاه به پیشنهاد وزیر برای گردش و تفریح از قصر بیرون رفت امروز خیلی به ما خوش گذشت مدت ها بود تا این حد از طبیعت لذت نبذارید حال و هوای من حسابی عوض شد آه. شاید هم به این خاطر بود که خیال من از قبل آسوده تن طب... خوشحالم که گردش امروز باعث شد ام. حالتان بهتر شود دوست ندارم مانه‌ای خوشحالی و خرسندی سرفرم شبه اما خرشید قروم کرده و بهتر از تو هوا تاریکر نشده و شب از راه نرسیده به قصد بازگرد آره حق با توست امروز اصلا متوجه گذشته زمان نشدیم نه باشد حرکت می‌کنیم تجاوه‌ی پادشاه را بیاورید آورید به قصد باز می‌گردیم بفرماید سرفرم هم برافاست برافاست وزیر به پادشاه کمک کرد که سوار بشه اونا به راه افتادند بعد از مدتی صدای زوزه ی روباها به گوش رسید وزیر بله قربان چرا وقتی ما اینجا هستیم و همه جا امن و امانه این روباهای پدر این اینطور زوزه میکشن خور براتان گردم آنطور که میدانید زمستان و فصل سرما در پیش است و روباهای بی هم لباس گرم ندارند و با زوزه از شما تقاضای بطو و لباس گرم و... آه که با وزیر و زیر ام... ام که زبان روباها را هم میفهمی اما ببینم چرا انها لباس گرم ندارند مگر ما همیشه دستور نداده ایم که در فرمان روایمان من هیچ کم و وجود نداشته باشد و همه در رفاه و آسایش زندگی کنند چه بگوگم قربانتان گردم من ده بی راستش چطور بگویم؟ بگو خیلی راحت بگو با قصر با مسئول مسئوله است که در آتش و مرایتا عطب نمی کنه. بسیار از اقلام را پنهانی برای خود و, و دارد. من برمیدارد است او چطور جرد کردن دستورات ما اطاعت نکند چرا زودتر ما را در جریان نگذارد بحانتان گردم من هم به تازگی به خیانت او پی پردم آه. بسیار خوب آه. بسیار خوب حالا که او روباه ها را از داشتن پتو و لباس گرم محروم کرده او را در یکی از همان پتوها بپیچید و به دریا بیاید داشتید دریا؟ دریا اطاعت قربا درزم جان هر وقت لازم است از خزانه بردارید بردارید و برای روباهای نازنین من پتو و لباس گرم بخرید و بینشان تقسیم کنید تقسیم, اتاق... تقسیم کنید تقسیم که بروید بروید و که به گفته خودش به تازگی پی به دست مسئول انبار برده بود و توی این بخور بخور درباری شریک نبود که به دل گرفته بود و به همین خاطر تنها بخش اول دستور پادشاه رو به سرعت اجرا کرد و مسئول انبار رو پتو پیچ به دریا انداخت و بعد هر چقدر که میخواست به نام خرید پتو و لباس برای روباها توی جیب خودش گذاشته چند روز بعد پادشاه ها برگ شکار به جنگل رفته بود یعنی چه؟ چرا این روبه ها هنوز زوزه میکشند؟ ما که با آنها پتوب و لباس گرم دادیم دیگر این همه سر و سناور های چیست؟ وزیر! در وزیر! در خدمت هم خدمت هم تا که زبان روباه ها رو میفهمی؟ بگو ببینم اینها برای چه هنوز زوزه میکشد اجازه بدهید سروران من خیر. ام. آه. آه، نه بابا. کورمانش نیاورد. اونها بازوزهایشان دارند شب با دارن. تشه کور میکنند. این ایکی لگر شکوه. ترو باهاي کاتشن آزیه. خاطرم اما یونیا ما راحت شد. یقین دارم که هیچ پادشاهی در جهان چنین وزیر باهوش و خردمندی ندارد غل بده وزیر که هیچ وقت هیچ وقت منو تنها نگوید خیالتان راحت باشد ام. هر جا که شما باشید من هم در کنارتان هستم چه در بهشت و چه در جهنم آه خب پس حالا با خیال راحت به شکار بپردازیم آه, اه. چرا هیچ حیوانی نمی آید باشه کارش کنیم؟ میاید قربانتون گردم، میاید مم. نه، چرا نمی آید؟ نه... نه. او سلمان صرف ass... آه، آه، آه آه، یه، آه... یه آه... اله... اله... اله... صدای آمد بزنیم قربان، بزنیم، بزنیم، بزنیم بزنیم، اه... اه... بزنیم ای این گره، گره، گره که تابعا بودم چیز که نه، این چیز این چیز فیل، آه. آره این فیل است فیل؟ قربان نزارید نزارید این آه. فیل شما آخر این دیگر چجور است؟ چرا کوچک است خورتومش کجا؟ چه بگویم قربان؟ چجور بگویم قربان؟ بگو راحت بگو این یکی از فیل های بیچاره شما که آه. به این حال روز افتاده است شنیدم فیل بان دربان بانها خوب رسیدگی نمی کند ام. قضای کافی بانها نمی دهد با به زشت یعنی برای همین خرتومش هم افتاده؟ آره همین فردا این فیل بان کفایت را گردن بزنید گردن؟ هر چقدر لازم از خزانه بردارید خزانه برای این فیل بیچاره غذا دارید این فیل بیچاره غذا تایید اطاعت قربان سفر روز بعد، فیلبان بیچاره به جلاد سپرده شد و وزیر دوباره به بهانه تحقیق غذا جیب خودش را از موجودی خزانه پر کرد. به همین ترتیب، وزیر با هر کس خصومتی داشت، اونو از سر راه بر می داشت و خزانه را خالی و جیبهاشو پر و پرتر می کرد به همین منوال گذشت تا اینکه یه روز عصر که پادشاه به همراه وزیر داشت از گردش روزانه برمی گشت همون گرازی که وزیر قبلا گفته بود فیله سر راهشون سبز شد وزیر این همان فیل بیشاره ما نیست؟ چرا یک ذره هم چاق نشده؟ بار براتون کردم این فیل که آن فیل نیست آن فیل حالا دیگر مثل سرورم <تصفيق> چاق و فربه شده. پس اگر این فیل آن فیل نیست <تصفيق> یعنی این فیل فیل دیگری است که مانند آن به این حال روز افتاده. و این یعنی فیلبان جدید من هم باید به جلاد سپرده شود و تو باید برای این هم مانند آن فیل غذای کافی تهیه کنی تا این فیل هم مانند آن خوربانت فیل خوربانت آرام باشید اینکه میبینید نه تنها آن فیل نیست بلكه اصلا فیل نیست <تصفيق> چه شد؟ درست شنیدی آه. این فیل اصلا فیل نیست پس چرا این فیل اینقدر شبیه آن فیل هست؟ این حیوان که میبینید یک موش است سرورم موش موش موش موش, موش موش؟ موش موش موش این دیگر چجور است ؟ مگر موش به این بزرگی هم داریم وضیح؟ نه سرورم به طور معمول هیچ موشی به این بزرگی نمیشود اما این موش با موش های دیگر فرق دارد مثلا این موش با دیگر موش ها چه فرقی دارد؟ پدرش فیل است یا مادرش که این به این بزرگی شده فرق این موش با موش های دیگر این است که این موش یاد گرفته چطور از سحن کاری و بیتوجهی آشپز باشیه دربار استفاده شرما قربان قربانتان کردم اما این موش بیشتر وقتش را در آشباز خانه که خمایونی میگذراند قبل از شما هرچه بخواهد و هر چقدر که بخواهد غذابی پرای <تصفيق> حمیدی جور چاق <تصفيق> عجب عجب عجب که این پس این موش قضاهای خوشمزه ما را خورده که اینقدر چاق و فربه شده و این نشان میدهد که آشپزباشی دربار ما لیاقت این را که آشپزباشی دربار ما باشد ندارد, ندارد. پس پس همین امشب، بعد از اینکه شام همایونی ما را آماده کرد، او را به دار بیاویزید آریست، ات می شود ماربا. هر چه هرچه زودتر هم آشپز باشی دیگری را کلبت دست پختش به خوبی همین آشپزباشی باشی باشد پیدا کنید و به دربار بیاورید تا صبحانه ما را قبل از اینکه چشمهای همایونی ما باز شود آماده کند و به این موش چاغ و گنده زشت و بد ترکیب هم اجازه ورود به آشپزخانه دربار ندهد نان همه اطاعت می شود قربان قربان شما که برای بهتر از ها کسی می همین امشب یک آشپز باشی قابل تر از این آشپز باشی برای دربار همه آیونی شما پیدا خواهم کرد. که ام. به موری هم اجازه ورود آشپزخانه دربار را ندهد ما اگر وزیر با کفایتی مثل تو را نداشتیم ام. چه باید میکردیم؟ چه باید میکردیم؟ قول بده قول بده که هیچ کام ما را ترک نکنیم قربان ام. قول میدهم قربان قول میدهم ام. که همیشه و در همه حال کنارتان بمانم <تصفيق> خبر دستور پادشاه برای اعدام آشپز باشی خیلی زود توی قصد بیچید و به آشپس رسید آشپس باشی که نمیخواست به سرنوشت بقیه دوچار بشه دنبال راه چاره بود اما دید فرصت چندانی نداره و هیچکس هم به جز وزیر نمیتونه بهش کمک کنه. با اینکه دل خوشی از وزیر نداشت اما راه دیگه ای هم جز اینکه دست به دامن اون بشه نداشت. به همین خاطر وقتی پادشاه مشغول خوردن شام بود از فرصت استفاده کرد و رفت سراغ وزیر. دهشتم به داماد وزیر کاری کش چاره ای بیاندیش کاری می دشتم بر رمیادیت هوش می دانم گاهی از من دل خوش شدی و کی رو به دل گرفتی اما قول می هم جبران کنم تو فقط کاری کن پاچو از تصمیمش منصرف سریف شد من زنده بمانم تا پایان عمر رو کری تو و خانواده اش می کنم انتظار است باشی بای. کار از کار کرده شد پادشاه تسمی را گرفته آش باشی جدید است شده و در راه است ترافت چوب گیدار آره تو هم آماده است کاری هم باید از ما بر تو هم وقتا تو رو کن برو چند ساعت باقی مانده ی عمرت رو با خانواده سپری دست کن رحم کن وزیر میخوای به پاید میوفتم میوفتم میوفتم به خودم رحمه بکنی به فرزندانم رحم کن آنها هنوز خیلی کوچکند رازی نشو یتیم شوند وزیر. وزیر این تمام پس انداز من است بگیر و برایم کاری کن کنم که چه شود بودن یا نبودن تو چه سودی به حال من دارد برو برو وقت خودت و من را تلفت کن این چندرقاس پس اندازت و هم بگذار برای خانوادت که چند روز زندگیشان را بگذراند و گراسته نمانند دیگر بیش از اینم نمیتوانم رحم و شفقت از خود نشان بدهم برو برو خدا بیا مور زدت وزیجان وز, وز, وز, وز, وز. تو به من کمک کن این خطر از سر من بگذرد به زنده بمانم من هم تا پایان عمر قضای تو را بیشتر و چرب و چلیتر می کنم ابله ابله این هم شد پیشنهاد اینطور میخواستی تا عم داری نوکری من و خانواده ام را بکنی کسای خانواده هم با من بهترین ها به به به به را برای تو و خانواده کنار میگذارم حالا این شد یک چیزی ولی نه، نه، نه، نه، نه، هرچون از... فکر میکنم کاری از دستان بر نمیگرد کور کور خب، خب، خب، خب، تو بگو چه کنم من می میکنم آشپز باشی هر دو خوب میداریم که آشپز خانه یه دربار است و بریز و بپاشو بخور بخورش و تو هم که در این کار استادی و تو هم استادتر باشن باشن قبول هرچه ماند نصف نصف جانت اینقدر میارزشست نصف نصف صحبت از باقی عمرتوس تو بگو چه کنم من همان می هشتاد بیست ها هشتاد بیست اگر قبول داری برو تا دیر نشده اقدام کن وگرنه روحت شد قبول داره هم مگر چانه هم داره؟ بس آه آه برو و همه چیز را به من بسپار. و نگرانه هیچ چیز به جا سپانه فردایی نباش. حتی اگر تا پای دار بروی بالای دار نمی روی. چون Man, capresto, unjust! Let's go, go, go, آشپز باشی جونش را به قیمتی گساف و با دادن باج هنگفت و رشوی ناعادلانه خرید وزیرم سرخوش از این توافق گشت راه چارهای پیدا کنه تا مانع اجرای حکم پادشاه بشه نیمه شب شد و آشپز باشی رو آبوردن تا در حضور پادشاه به دار آویخته بشه رنگ به رخسار آشپز باشی نمونده بود با وزیر گفته بود نگران هیچی نباشه اما جلاد تناب دارو به گردنش انداخت نفس تو سینش حبس شده بود و قلبش از شدت ترس کم مونده بود از کار بیفته که یه دفعه وزیر جلو اومد دستگاه دارید دستگاه داری، داری. وزیر آه. چطور به خود اجازه دادی که معنی اجرای حکم ما شوید این آشپز باشی بی کفایت و بی توجه. همین امشب باید به سزای اشتباهاتش برسید قربانتان کردم. من حقیقی باشم که بخواهم روی حرف شما حرف استن. آشپز باشی را به سزای اعمالش برسانید اما نه امشب آه. امشب با های دیگر چه فرقی دارد وزیر؟ نکند آشپزی که لایق کار در درباره همایونی ما باشد؟ پیدا نکرده نه گردم عشب از در راه هست و تا ساعتی دیگر میرسد پس دیگر جای نگرانی نیست دارش بزنید سب کنید سر برم کنید من تقویم نجومی را بررسی کردم و دیدم نیمه شب امشب ساعت بسیار خوجسته و مبارکی است و هرکس در این ساعت از دنیا برود تا آخر دنیا در بهترین جای بهشت زندگی خواهد کرد خب که چه وزیر قربانتان کردم. آشپز باشی قرار است مجازات شود اگر الان او به دار شود که مجازات نخواهد شد، بهترین پاداش دنیا را به او داده اید میخواهید این آشپز بیکفایت و بدذات را با دستان خودتان به بهش بفرستید که تا آخر دنیا خوش بگذارونم و آقابت به سعادت من شود خیلی خوب شد وزیر جان خیلی خوب شد دستت درد نکند که به تقویم نجومی مراجعه کرد همیشه دوست داشتیم به بهیچ سفر کنیم حالا به جای آشفز باشی مرا دار بزنید تا فورا رای بهش شوم. زود باشید تا هنوز فرصت باقی. آه. اما نه سب کنید صبر کنید آه. وزیر بله قرمان یادت نرفته که در این سالها همواره چه قولی به من دادی ها؟ نه نه یادم نرفته قربانت از شو که می با هم به بهشت برویم؟ اول وزیر را دار بزن اه اه نه نه نه نه هر دومان رو را با هم دار بزن که لحظه ای از هم دور نباشید به جمجلات وقت است چیزی نمون ده که این روز من مبارک به تایم برسن سلیفتش زودتر بیار و به این ترتیب وزیر قربانی نخشه های خودش شد. افسانه سفر همایونی به بهش رو شدیدید. این افسانه از کشور هند و برگرفته از کتاب قصه های آسیا ترجمه مهدی پرتوبی بود. گاهی اوقات در سرزمین های مختلف شباهت هایی در افثانه ها دیده میشه و این افسانه یادآور این زربال مسئله که میگه ای کشت کرا تا کشت شدی زار عزیز پیامکی رادیو نمایش 301075 در اختیار شما است تا با ما در ارتباط باشید نشانی ما هم رادیو نمایش نقط ما منتظر شنیدن انتقاد و پیشنهاد های سازنده شما هستیم سفر همایونی به بهشت تنظیم برای رادیو ساغر مختاری راوی نگین خاهنصیر بازیگران مهدی تهماسبی رضا قلمبر بیوک میرزایی اکبر مولایی علی ازخر دریایی بابازی و کارگردانی بهرام سروری نژاد، افکتور محمد رزا قبادیفر صدابردار محمد رضا محتشمی تهیه کننده زهرا عبدالله زاده افثانه ها رنگی از زندگی زندگیت افسانه زندگیتون دلنشین و مانا تا دیگر بدروبت